nya oh. بزر خاجه که قشنگ هم شهرام نازالی و بنده متهم شدم به کم برای اینکه اول که دیر آمدم یه هفته دیگه ای بعدم که تا این راق نزیم تا به اصطلاح نوار رو سر آهنگ گفت نوار یک ساعته است بعدم هم قبلا امتحان کرده بودم که زبسوت هم اشکالی نهیش که بشه درست صداش هم کار خلصی مقداری ساعت داری شد حالا بخون ناصر خان کجاست بخون یه غزلی که امشب متنهه بزرگ چمان من چرا میل چمن نمی کند همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند لخ, لخ شد سبا دامن پاکش از چه روی پاک برنابشزار را مشک خوتن نمی کند. دل به امید وصل تو همدم جان نمی شود جان به هوای کوی تو خدمت تن نمی کند تا دل هرزگرد من رفت به چین زلفه او سفر دراز خود عظم وطن نمی کند. پیش کمان عبرویش لا به همین کنم ولی گوش کشیده است از آن از آن به من از آن, بوش بوش به, من. از آن به اون چیز گوش کشیده بوش از بوش بوش است از آن هیچ بو به من نمی گوش به من نمی کنم. با همه عقب دامنت فدامنت از مصیبا عجب که از گذار تو خالص را مشک ختان نمی کند چون ندیم می شود دوست داناب شکر شکن چه که دلم چه یاد آن شکن نمیکند. ساقی سیم ساق من ساقی سیم ساق من ساقی سیم ساق من که غمم دور می‌دهد کی که تن چو جام می جمله دهن نمیکند. کشته غمزه تو شد حافظ به ناشنیده فن کوشته غمزه تو غمزه تو شد حافظ ناشمید تن تیر صدا هر کی صدا هر کی را در تو فان ها زال نسبتا تن سخت است بذمه <تصفيق> بخونم زال مشکلی است اینو آقای شجریان هم خونده خیلی هم بحث <تصفيق> بود <با> و عرض ناظران <نذاره. تصفيق> چون که آواز خون خیلی درجی یکی است در, در چکینی است ولی آهنگش رو خودش ساخته و آهنگساز نیست. بنابراین ناچار اون ساقی سیم ساقن دورد درد می‌دهد. اونجا سیم ساقو میگه ساقی سیم ساق آهن اند یه این طوری اینطوری خیلی مالونده به هم و خیلی بده اگر که پیدا کردم ممکنه بیارن که ببینید که وقتی که یه خواننده تازه اولی پاشه از گیلیم خودش بیرون میذاره و بارده یک کاری میشه که کارش نیست و دیگری باید اون کار بکنه و این کار میکنه اون وقت چجور ایک میشه در هر حال این غزل اولا که اسطلاح است که بهش میگن پاره یا مصممت قدیم مثل که اون دفعه گفتم آنجلیس که از اون گفتم اینم هم همونطوره یعنی پایهاش یه اندازه مفاائل مختلفان مفاائل، سرد چمان من چرا میل چمن نمیکنه. همدان گل نمی شود یادست تمام نمین پای هاش دو تااس زوج و مساوی بنابراین میشه که به صورت چهارخونه نوشته به صورت مسممت قدیم نوشتهش و خیلی حافظ این غزان نداره اینا. غزلایی است که میشه زربی خوندش به دلیل اینکه قشنگ دونست میشه یه مصرعش دونست میشه گاهی اون نسخه مصرع هم خودش دونست میشه که این نمیشه البته این است که خیلی میشه تو آهنگ زربی قشنگ شد حالا بنده می‌خونم سر به چمنان من چرا می در چمن نمی کند همدن گل نمی شود یاد سمن نمی کند لخلخ لخ شد سوا دامن پاکش از چه روی خاک و را مشت خو تن نمی کند. دل به امید وصل تو همدم جان نمی شود. جان به هوای کوی تو خدمت تن نمی کند تا دل حرزگرد من رفت به چین زلت او از سفر دراز خود زن سفر دراز خود از وطن نمی کند. پیش کمان ابرویش لابه همی کنم پیش کمان ابرویش لابه همی کنم ولی گوش کشیده است از آن گوش به من نمی کنم با همه عطف دامنت آیدم از توا عجب که از گذرتو خاک را مشک خوتن نمی کند. چون ز نسیم می شود ظلخ و نفش پرشکن که دلم چه یاد از آن احچکن نمی کند ساقی سیم ساق من گرهنه درد می دهد کیست که تن چو جامعه می جمله دهم نمی کند کشته خمزه تو شد تا فز می دهن. تیغ سزاست هر کراف، درد، سخن نمی کنید ظاهرنان غزل عاشقانه است ایش عرفانی اینا نداره به اعتمالان غزل بوستانه و عاشقانه است شاید انوال روزگاه جوانی و حافظی اینا دیگه ما حدس میزنیم همین بودیم مثل رمالا و جادوگرها و اینا اینا حرف علمی نیست که میزنیم ولی به نظر میاد از حالا هوای غزل و از معانی و مزامینی که در این به کار رفته که این مال دوره های جبونی باید باشه و اون جرایانات افتاد دانی صورت عاشقی و اینا هستیش هیچ ارخان و تصفف و اون مسائل و اینا در این نیست چمیدن یعنی به ناز راه رفتن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 چمن هم شباحت لفظی داره با چنیدن و چمان و چمن و اینا, اینا رو باش بازی میکنه همجود که کرده دیگه حافظ. سر بچنه در زمن باید بگم که سر رو فقط کسانی میتونن رفهمن که یعنی چی که شیرازی باشن یا لاغل شیراز وقت روشن و متقیل مونده باشن برای هیچ جای دنیا اون سربه به اون اعتدال و به اون قامت در حوض دوازده متر، پونزده متر، صافت و این وقتی که آراستش میکنن درست مثل یه شعله شمد که اونجور تاملا یا مثل زن زیبا یه قد بلند که چفادر سرش کرده باشه این دامن یعنی این دوقه قاغو بار دو ساعت چند چک میاد بزرگتر میشه نهایت تناسب و زیبایی رو داره به خصوص سروایی که معروفه به سرو ناز در همه جای ایران سرو هست ولی هیچ کدوم سروش بی نیست یک سرو تاریخی بسیار بسیار مهم هم بوده سرو کاغشمرد و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 این داستان خیلی مفصلی داره اولا صرف درخت خیلی خیلی کهن بشویه یعنی جایی هزار سال بیشتر و کمتر از عمرش میتونه بگیره اگر میشه در زمین استوار کنه و جای مناسبی باشه سنش به هزار و بالاتر و بالاتر میره و گفتن که متوکل حلیفه عباسی که ساخته بود و برای این سالن این وست این تیر چوبی بلند میخواست این تیرهای چوبی رو من یادمه که دوره بچگی ما به اینا میگوستن هممال همماله باید از این بوده که سالن وقتی پهنگوگه پهناش زیاد این تیرهایی که میانداختن روی سخت که این حسیران نگدره این کم میده دونه یه دونه تیر دراز از این در درازی میذاشتن که این عرض اون سالون و اون اتاق رو دو قسمت تختیر کنیم اون وقت تیرهای کوتاتر میذاشتم تا نصف این اون که رویم تا نصف این این تیره وسط روش میتازم هممال و معمولا از درخت بسیار بلند این گروم بوده و کم بوده و پیدا نمیشده و بعد هم از یه حدی بیشتر نبوده و همین دلیلم نمیتونستم بلندتر از یه مقداری سالون بسیزم نم توبه بدرخورش وجود نداشت. متوکر ساران بزرگی ساخته بوده و بهش میگن که تنها درختی که هست درخت سر است در کاشمر این قد شمین هستی چنان است. و لاب و دوستان انگوشتن توشیر میزنن دیگه آدم که خودشیر نیم و رضالت میکنن حساب شخصی ها سایر مسائل به هر حال میگن که این چیزه این خیلی خوبه من مناسب قصر خلیفه میان تصمیم میگیرن که اینو چیز کنن دردشتی ها میان جمع میشن و میگن آقا این برای ما و فلان و فلان و چقدر چقدر میزیون ها پولای گذاق میگن که ما به دستار خلیفه به قزانه سلافت تقدیم میکنیم که از این تشنظر میگه نفت بعد میگن که ما در کتابهامون خوندیم که این سرب انداختنش شونه و هر کسی که به این سرب سو قصدی بکنه حتما به جوز خواهد مورد و ما اینو گفتیم حالا که شما میخواد این کار بکنیم که شما خبر کنیم بازم طبعاً بفرمه آقا سرد بعد خیلی خوش آمدین شما خودتون گلین آقا حالی ممنونم عزیز من حالی چطوره؟ بفرمایید؟ ارز کنم که میگن ما اینا رو گفتیم که شما بکنیم نه بعد میگوید که وقتی که این درخت رو انداختن صدها هزار مرگ بیلانه شدن و بچه هاشو میناسی در جاها و این درخت بلیمونم 20 مت، مثلا، قدش بوده بودن همه ریختن زمین و هزاران گوسفند که در سایه این صحب آسایش میکردن که بی بیابونام این, این سایه در این مناطق کبولی یه چیز حیات بخشیه که وقتی نباشه به کلی چیز میکنه اینا همه بیلون و سرگردون سودن و برد شدن و مقادیر زیادی گفتن این شاخ و بلدهایی میکرسدن چقدر؟ جا رو گرفت و بعد نمیدونم چندین حالا جوزیاتش چندین خاطر رو اینا هم بار کردن که به صورت ردیف به صورت قطار مثلا 20 تا نمیدونم چیزی تا قاطر کرد یعنی بلند کنم بذارن رو همه اینا که اینا با هم را بیوکدن و از کاشمر از اون سمت کبیر از توی این ریزا ببرن برسونم تا پتار وقتی که درخت رو به و رسوندن جنازه متوکل از دروازه دیگر وقتباد میانند ارز کنم که قصده سر به کاشمر یا سر به رو در لغتنامه دیر یا در دارات و لما رو مرحوم مصاحب اونا ببینید و خیلی خیلی در عدب فارسینی مزامین زیاد هست در این مورد بود سرونش اسفانی قهسیده یا در ستایش ناصر بینشا آمد برم به زلف راست جبین حوو به حریش سر به سمن در چین زلفکامش دیست هزاف بند در بند زلفکامش دیست هزاف چین بعد که در کاش نبود نبوده ترک ما محروض در کاش نبود نبوده ترک ما محروض در کاشمر. نرسته چونو سر و راستین بودیزه بس و سرخیش در دلب گفتید لبش گلست سرشته به با قنج و با دلال به نزدیک من نشست با رنج و با ملال مرادی هم نشین گفت از فراق کیست که تو را ملون گفت از کیست که تو را غمین گفتم که از فراغ بها است خزن من تو بر از بها را باشم همین هزین امروز بامداب شدم سوی بوستان دیدم توهی مغا گلو بل جاوی یا زاغ است جاوی بلبل دیدم شده مهی ماق است جاوی سلسل سل دیدم شده مکین بانگ زغن درو ای بانک اندلی باط خناج در اون ای وازه باغ انبرین بگریسته باز جاو جه سمبول استمن بگشته برف جاو جه سمبول استان در زیر برف سبزه و سمبول شده تخین گشته قراق بر زبر شاه نوگر نفرین نوشته بودی بر یا آفرین چتری به در بر واغله بوستان چند در بود و به از روزه برین رفتم فسوس گوجان نزدیک آن درخت چند در بهاو خورده بودم باط و ساقین یعنی پیمانه دیدم خزان رو بوده از آن نزحت بهاو فرزید دریذه در باد سلب ها به این بگ سست مهرگاه نو خواه کنده کرده پاک پیراوی ها که در برش از گفت سپنیم با من چه گفت؟ گفت منانم که در بهار هر روزه گل ببردی از من به جز نزد من نبی نخوردی به بوستان کرده میان به بستان بودی مرا گزین زیرا که بود قامت من در میانه، باغ ماننده تر به قامت آن سر به چون داشتم به قد نگاه تو نسبتی همباره دل به قامت من داشتی رهین ششمه نکردی از پس خرده یا من بعد احنونه که تو بودستی کنی چشمه نکرد تا مرمراز یا فاموش کرده این چشمه گذشت و هست کنون ماه هفتمین بسیار چرد از من و از عهد من گله من نید گشتم از وی بسیار چردی باقیشون نمی کنیم این قصه سرب کاشمره و به هر حال سر آیا چسب در سر ادب فارسی و م... چیز و م... اصطلاح اساسش هم شعر های لازمی داره دیگه اینطور شعر ناز. یکی دو تا شعر که توی اون باغ اونجا تو تو تا... آقای دکتر جواهرش بهتر از من بدونن بتونن بگم شعر نو که تو باغ ارم نیست سر شعر از یه یه جور شعر خاص است شعر نو سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند هم دم گل نمی شود گل به معنی گل سرخ بار بود یاد سمن نمی کند لخ لخ شد سبا لخ لخه اسم گرد معطر سیاه است. مثل قالی و اینا که میزدن خانم ها به زلفشون توز سیاه خوشتویی بوده این روش بسنین لخلخه سبا باد سبا لخلخه ثابیت یعنی بوی خوشت و اطراف پراکنده که هست پلاس در اش قالی مش که اساس اینا هست سیاه رنگه ناچار لخلخه سای شد سبا یعنی باهارشد باد باهارشد شروع شد به ثابیدن لخلخه دامنه پاکش از چه روز خاک بنفشزار را, را مشک خوتن نمی میگه با اینکه شده چرا نمیاد در بنفشزار محشوب چرا نمیاد خاک که بنفشزار را مشک خوتن نمیکنه کنه خوتن بخشیست در الان حدود مغولستان چین جنوبیست تو اون آهوی معروف مشکین مال این ناحیه است آهوی خوتن اه، حافظ میگه مجدگانی به ای خلوتی نافذشای که ز سهرای خوتن آهوی مشکین ها بنابراین آهوی مشکین مال سهرای خوتنه میگه که چرا معشوق نمیاد به بنافش زار تا از قدم او و از مقدم او خاک بنافش زار چی بشه؟ مشک خود بشه دل به امید وصل تو هم جان نمی شود جان به هوای کوی تو خدمت تن نمی میگه همه اجزای وجود من تو اصلا داغم کردی دل به هوای اینکه در خدمت به امید وصل تو طرف جان نمیره. کاری با جان من نداره دنبال توست. جانم به هوای کوی تو خدمت تنه نمیکنه. کنه تا دل هرزگرد من رفت چین زلف او یعنی از که عاشق شدم تا دل هرزگرد من رفت چین زلف او زن سفر دراز خود عظم وطن نمیکنه. دیگه دل من از وقتی در چین زلف او جا کرد دیگه خست بازگشت نداره عرض کنم که کلمه ی هرزگرد یک آلتی هست در در یراق واقعی و اسم اون کسی که گلا بکنی اونا درست میکردن و که کاری هست که سرنه و ملیله اون درست میکردن کاری هست، حالا یادم دید تو میگم، یک کار نوع بافندگی اینا هست و با نخ کار میکنن، نخها به صورت کلافه، این کلاف رو میاندازن روی یه چیزی که مثل یه منشور مربع القاعده یه ناقصی، یه چیزی کلاف میزن روش این روی محوری که میتونه دور خودش به و خیلی اینو رو روان درست کردن، این سر نخو که میزن، میزن به چرخ و می‌چهرکنن که این دوره که غیره ایفچه اون،, اون هم دوره خودش می‌گرده اون که کلاف می‌دزن دورش و باز میکنن اون رو بهش می‌گنن هرزگرد نه دوک اونه که نخورش می‌پیچن اون هرزگرد کلاف رو روی هرزگرد تا باشه پیچیدش دورید دوک چرخه، یا چرخ ماشینی، یا چرخه دست دستی که وقتی می‌چرخه، این نخ دورش کشیده می‌شه، این نخ از کلاخ میاد. کلاخ روی که اون آلت خیلی به ربونی و آسونی دور خودش می‌چرخه، اون آلت از یه هرزگرد تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او، زن سفر دراث خود از بطن نمی‌کن پیش کمان ابرویش لا به هم می‌کنه اینجا در مورد کمان باید بگم که اصطلاحاتی داره از جمله گوشه کمان کمان گوشت اصلاً سیستم کار کمان رو شاید شماها ندونید الان چیزایی که درست میکنن مثلا تیر کمان دید. کشی میکشن بعد بلی میکنن بعضی اون نقلی که به کمان بسته زه رود است و زه گوستند خاصیتشونی که اگه هر چقدر بکشیدش یک میلیمترم کش نمید اصلا کش نمید پاره میشه زیاد کشابیری اصلا پاره میشه ولی دراستر نمی کش نمید بعد میان یه چوب بسیار محکم و دو سرشون میگیرن نزدیک بودن یه ذهر کوتاه ها میبرنن بهش که این اینو تخم میگردی وسط این چوب چوبه از چوبه خیلی خیلی محکم چوب مخصوص این کاره مخصوص چوب ساختن کمان بعد وسطش یه دستی داره که بسید قبضه یعنی جایی که میگیرن اونو میگیرن این ذهر رو میکشن ذهر که کش نمیاد که به هم وقتی هستن وقتی زور میگن ازش چطور میشه دو سر چوبهای کمانی که به هم نزدیک یعنی این خم اینه این خم خمتر میشه اگه این دویه بعد یواش یواش خم میشه اینجوری که میکشن از وسط این خم میشه بعد به محض اینکه دست ور دارن عین هم کش کش میاد این چوبه که خم شده یهو راست میشه و این حرکتش تیر رو خطا افکنه اون دو سمت دو سر کمان که زهر رو بهش بستن اونها رو میگن گوش و گوشه کمان یک دوم اینکه کمان رو وقتی که میخوان خیلی خوب بکشن باید تا گوش بکشن یعنی تیرانداز اون قبضه کمان رو باید برسد دن بوشش تا کمان کاملا کشته بشه و یکی از قبائد و مقررات پهلوانی این بوده که وقتی پهلوان پهلوانی میامده رو میدشته میدون میگفته هرکی لوتیوی این کمانان رو بکشه و طبیعی کسی که کس زور بازنش و با اندازه اون پهلوان نبوده نمیتونست کمانون بکشه چون صفت بوده نمیتونس. و به عکس اگر کسی پهلوان تر بوده اینقدر میکشده تا این کمو بشکند. این قاعده کار بوده. حالا این اشاره به اون اصطلاحاته و اینا یه چجایی بوده که در روزگار حافظ کاملا عادی و جوادی بوده همه میدونستن همه میدیدن همه قبر داشتن. تایید مشکل نبوده اما الان مشکله پیش کمان ابرویش لابه همی ولی گوش کشیده است آن گوش به من نمی کنم میری تا گوش کشیده تو حتی من چه؟ کنه زده که من پیش کمان ابرویش لابه همی کنم ولی گوش کشیده است <تصفيق> از آن گوش به من نمیکنه با همه عطف دامنت آیدم از طبا عجب که از گذره تو خات را مشک خوتن نمی کنه. اینجا ای توجه و مشک خوتن دو دفعه خافیه کنی یه دفعه بیت دوم یه دفعه این بیت که بیت هر کنم که در عوضش بعضی نسخه ها بیت های دیگه ای داره که اینجا تو نسخه خاندادی نایمده یه بیتش که در نسخه میگه آمده دیگلیز تو رشد کردم و از طرف خصوص گفت که این سیاه کج گوش به من کن. یه کنه بیته... یه بیت دیگه هم دست خوش جفا مکن آب روخم که فیض ابر، بیگ مده دسترش که من درر عدن نهی اون مشک خوتن دور یکی درر عدن بودشته عدن در یمن یمن خیلی و دریای اونجا هم است که موروارید زیاد داشته یکی از مراکز سید موروارید بحرین بوده در خلیج فارس. یکی هم عدن و خلیج عدن یعنی که در عدن یعنی موروارید عدنی میگه که آب روخ من رو دست خوش نکن برای اینکه عبر بیمدده سرش که من در رعدن نمی سزید قصه در حضیره ساختن مروارید رو هم میدونید گذشتگان خیال میکردن که صدفت میاد روی آب سطح دریه خود رو وا میکنه نرمتن میگه خود باز میکنه بعد بارانی، باران باران ماه نیسان که بیاد یه قطره با شرایط محسوس که بی توی این صدف این اینو نگه می‌داره و پرورشش میده و تبدیل میشه به مورباری همین قصده رو سعدی در چیز آورده که اکثر شما شاید کتابی کتاب در خوندید یکی قطر باران زعب می چکید تجل شد تو پهنای دریا بدید که در جایی که دریاست من کیستم گر اون هست حقا که من نیستم تو خود را به چشم حقارت بدید صدف در کنارش به جان پر سپهرش به جایی کار که شد نام بر لعلو شاختا بلندی از آن یا پوپست شد در نیستی پوپ را هست ولی این افثانه چنین چیزی اتفاق نمی افتد هر یکی حرکت اصلا نده یعنی مثل یکی سنگ رو خود رو حرکت که داره اینی که خود رو باز می و خوردریز مواد مواطی و چی داری که دریا هست از اینا هم علت پیدا شدن مورواری این است که یه وقت زیر دریا وقتی که جریانات آب به هم بخوره یه ماهی ردشه یه بشه یه بشه این شنای بسیار ریز سطح دریا یه دونش می تو تن این حیفونه بزن و این نرمتن دیگه اینا را بیشون نرم نرمتن این توی صدف هم که این خود مورواری درخشان و بر این اینو از ماده آهکی از وجود خودش ترشم میکنه کنه برای اینکه زبر نباشه اون تو بسترش جاش نرم باشه وقتی این شن می توی بدن این اینو آزار می ده یه ای این چیزیش وقتی توی شبشتون افتاده این چه می کنه همون چیز کنی ارز کنم که باید شروع میکنه دور اینو ترشوف کردن از همون ماده آهکی ترشوف میکنه برای این آزارش ندهی. میشه موروانی. حالا یکمی استراحت بفرمیم چند دقیقه تا بعد رنبا با همه عطف دامنت آیدم از سبا عجب که از گذارت تو خاک را مشک خوتن نمی کند. به معنی یک تازه دست دیگه الان هم همین عطف کتاب عطف دامن یعنی اون لایش یعنی اون تو گذاشته قسمت تو گذاشته عطف دامن یعنی عطف یعنی بحش تو گذاشته میگه با اینکه تو عطف دامن داری یعنی قسمت تو گذاشته دامن هتما میره دست سوا میرسه تعجب بگنم که سوا از گذرهتو خاک رو تبدیل نمیکنه مش خودن تو داری میری عط دامن هم حرکت میکنه عط دامن تو به دست باز سبا هم دادی تعجب که باز سوا هم خاک رو تبدیل نمیکنه مش خودن چون ذیم می شود ظفه و نقشه پر که دلم چه یاد آنشککن نمیکنه اینجا چند تا مثله داره اولا تر رو خیلی تشدیح میکنند به زول. دلیلش این است که بنافشه ساقه بلند داره بنفشه ایرونی البته ما بنافشه تبرید به اصطرام بنافشه مازندارونی ساغه بلندی داره در 10 سانتینتی یا بیشتر و دست دست از این عین زول. اینی که تره بنافشه و ظلف بنافشه و اینا بعد موی خیلی ملایم و باगम داره که او رو هم به نسیم زلف جانان پخش میکنن و تره و برفشه و زلف و برفشه هست خود گلش هم چیز کوچکی است گل کوچیکی است تازه پایین پایینه اینجوریه و مثل چین و شکن سر زلف میونه درست اون موهای صاف صاف یعنی اون ساقه های صاف بعد سرش گلای که برگای ریزیز و چینشکن ریزیز داره درست مثل یه بانوی که این اولای اوایل موش صافه اون پایناش رو بعد این پرش چیچ میکردن این کنارش که داشت اینطوری اینه که میگه چونزه نسیم چونزه نسیم میشود زلطه بنافش پرشکن یعنی وقتی که ظلف برفشر و نسیم به هم میزنه و چیمیشکنش به هم میرزه و که دلم چه یاد آن عهد چکن نمیکنه چه یاد آن عشکن نمی چقدر یاد آن عشکن می کنه خیلی اینو یا مارا خنده نگیرد؟ مارا خنده نگیرد نمی این درست هم اگه ها چون زنسیم میشود زلف ظلف بنافشه پرشکن و که دلم چه یاد آن عهد شکن نمیکند از شکن ظلف بنفشه منتقل شده به شکستن عهد ساقیه سیم ساقنن گر همه دورد میدهد کیست که تن چو جام می جمله دهند جام مشخص‌ترین قسمت وجودش دهنشه. شده ولی اینکه دهن جام از باقی قسمت های دیگهش گوشادتر دیگه جام پهاش چیز از چیز این رفانیتر میشه گوشادتر این قسمت دهنشه. این از که تمام وجودش این که تمام وجودش در حقیقت مثل دهنه میگه اگه ساغی من هم دوردم بده کیست که همه تنشو مثل جامعه همه تنشو دهن نساسی ساغی سیم، ساغ من گر همه دورد میدهد کیست که تن چو جامعه جمله دهن نمیدهد یعنی همه که اینش دیگر استفام انکاری کیس که این کار یعنی همه این کار میکنن یعنی اگر ساقی من دور دهده ده همه کس مثل جامع نی جمعه وجودشون رو طوام وجودشون تبدیل پدیر میکنن به دهن کشته قمزه تو شد حافظ ناشنیده پند ناشنید پند صفت حافظه صفت مخبولی مرکبه حافظ پند نشمیده یعنی هفت نشمه کشته غمزه تو شد حافظ ناشمیده پند حافظی که پند تو سرش نمیده خب میگه اگر کسی از سخن دردش نیاد بعد پوتک میده. اول میگن این کار رو بکن، این کار رو بکن، یا این کار نکن، یا فلان بکن اگر قبول کرد، کرد، اگر نکرد، اون وقت به زور بامیداره این است که میگه که حافظ پشته شد، چرا پشته شد؟ برای که حرف کرد، چه پند که بهش دادن؟ نشنید، که بودش میگه؟ میگه پند به نشنید؟ خب کسی که از سخن دردش نیاد، سرکارش با چی میفته با تیر؟ پشته غمزه تو پشت شد حافظ ناوشمند پنه چیق ساز است هر درد سخن نمی کند. درد سخن نمی کند یعنی سخن مایه دردونه نشی سخن نمی شود. درد سخن نمی خب غزل بعدی غزل درجه یکیست و بنده خودم بخونم ب اول <تصفح> رابون کنیدی در بازی ما بی خبران من چنینم که نموندم بگر ایشان دارد نقطه پردار وجودند ولی اشت دامد که در این دایره ترگردان عجل نیست با لبشی دهنان با خدا ما همه بنده, بود. بود بنده رو این با و اندار مستقایی محوایی می و محشب داری به جروع نستن اِشْ پاو زاوے چلی مستعفِ اِترا دیده من تنها نیست دی تے و خورشید همین آ گئے ماہ خورشید همین آ گئے جس کو خوشی بے شب ہر دئے آ ماہ ملتا کہ دریں آینه نظران حیران مگرم چشم سیاه خوبی آنی در خواهد برنم از و مستی همه کس گر شوند آگه ما مبوچگان بعددین خرقه سوکی به گروه نستانند گر به نوز از جهه ارواق برد دول هستی به نشه. زاهه در زندگی حافظ نتوند حافظ چه نه نه، خیلی نه کنم. که ما نظربازی ما بیخبران حیران من چنینم که نمودم دگریشان دارم. آقلان نقطه پرگار وجودند ولی اشتانت در این دایره سرگردان عهد با لب شیرین دهنان خدا ما همه بنده و این بوم خداوندان مفتسانیم و می و مطرب داریم آه اگر خرقه فشمیم لاف عشق و گله از یار زهی لاف درو عشق وازام چنین مستحق اجران جلوگاه رفعه او دیده من تنها نیست. ما خرشید همین آیم وصف خورشید به شبقره اعما نرسد که در این آگنه صاحب نظران حیران هست مگرم شیده چ... مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار بر نمستوبی و مستی همی کست نکامن گر شونده گه هزندیشه ما بچگان بعد از این فرقه سودی به گروه نستانن گر به نزهتگه ارواح براب بوی توباد عقل و جان گوهر هستی به نصار افشانه زاهه در رندیه حافظ نکند فهم چه شد دی بگریزد از آن گفت به قرآن پانید خیلی غزل درجه است، غزل ارفانیست هرگیست کاملا و یکی دو تا بیتش تکراریه مثل همین به گره بیت چهارم اینجا هست و هوای می داریم آه اگر ترقه پشمین به گره باز یک جهت نهم هم شوند آگه از اندیجه ما ما وچگان بعد از این ترقه به گره این پیداست که یه بار حافظ بهتو ساخته بعد خوشش نایمده عوض کرده در گش کرده و این در نسخه های مختلف بوده استادم آوردن این جاید حال دو و چهار و شیش و هشتا از نسخه هایی که محفظ کار معروم دکتر خاندری بوده این غذل رو دارن در ما بی خبران حیران هست درسته کسی که هر کسی که از هر عوالمی اطلاع نرشته باشه خبر خور میمونه ازش که هر چی هرچی می میخواد باشه من یه بار گفتم گفتمم سرکرس میگه بله نادر لشکر کشید به هند در عثمانی بود لشکر کشید به هند رب تحریر گرفت آه آه, آه. این کار یعنی چند هزار تا آدم رو شقد راه باید ببره اینا روز سه دفعه باید قضا بخورن راهشون باید انتخاب بشه دشمن نباید خبر بشین رو دارن میان خودشون دشمن سرشون تاخته بیاره بعد بسائل و سور و سات و خوراک و بسات اینا رو درست کنه و هزار جور کارای خوردریز کوچولو کوچولو کوچولو که وقتی آدم آگاه نیست از مسئله اصلا وارش باید وقتی وارد یه کاری شد بعد یه که او قدر، در سر هست چقدر گرفتاری هست چقدر مسئله میگه می که بیخبران در این کار ما در نظر ما حیران هم. چیزی ازش نمی هم. من همونطوری هستم که نشون میدم یعنی ظاهر و باطن هم یکیه من چونی اینم که نمومدن همونطور هم که نشون نمودن به معنی نشون دادن هست و این که حالا به صورت یه خود معدبانهی کردن میگه مثلا، نمیدنم که حرکت کرد، یا حرکت نمود این درست نیست نمودن به معنی نشون دادن. به همه کس به نمودم خم عبرو به تو داری نشون داده به همه کس به نمودم خم عبرو به تو داری ماه نو هر که به همه کس هست نماید این نشون لغت ها نمودن هم اونجای کردن به کار بعد اون بعد اونجایی که نمودن باید معنی خودش به کار بره نداریم لغت بسر من چنینم که نمودم میگه من چونین چون و این یعنی این تو، چون و این می شه چون و آن میشه چون چنان چنان یعنی اون دور چنین یعنی این اصلشم اصلش هم چنین، چونین و چنین بوده کم کم شده چنین. حالا چنین،, چنین من چنینم که چنن مودم. تو چجایی نقطه پرگار وجود یه مبحث مفصل هست. بحث و جدل بین آخر تئیت. اولاً که حدیث هست در این مورد که اولین وجودی رو که خداوند آخرید اولین چیزی رو که خدا آخرید عقید اول ما خلق الله الارد و اساس فلسفه قدیم هم همینه اونا که این جازبه و این قصه های علوم و جلدی که نمیدونستن میدونم که اینا حرکت میتونم این سیارات اینا خب میگفتن این، این، این، حرکت این یه بعدی کسی یه چیزی معرکی میموشن میتونم خیلی خود ذات حق اینا رو حرکت ده قبول، قبول ولی ذات حق چجوری؟ یعنی ذات حق دستور میده به آسمان که بگرد یا به افلاک که بگرد. اینو آماده این برای آم تشکیفاتش رو درست بکنن گفته بودن که 9 تا فلکی حالا اینا جزئیاتش مفصل من الان نمی‌خوام 9 تا فلکی مثل 9 کره مثل 9 تا دوسته پیاز توی هم دیگه هر کدوم این افلاک یه تنه داره, داره و یه عقلی داره و یه نفس عقل چون اولین موجود است که خداوند آفریده بنابراین ترین موجود مادی هم هست و عقل قابل اینه که مستقیمن امر الهی برای او ساده دید بنابراین خداوند امر به حرکت افلاف و عالم و همینه رو اول بار به عقل ساده دید. بعد میگه پایین مرتبه عقل یه وجود مادی دیگری هست که او رو نفس نفس به لطافت عقل نیست اما به خشونت و کسافت کسافت معنی فشوردگی معنی پلید بودن به فشوردگی و خوشونت ماده هم نیست عقل به عمر الهی رو میگیره ابلاغ میکنه نفس نفس چون یه ذره با ماده نزدیکتره میتونه از یه طرف با عقل مربوط باشه از یه طرف با ماده مربوط بنابراین امری که از مستر جلال از ذات هفت به عقل میرسه عقل این امر رو منتقل میکنه نفس نفس هم این امر رو منتقل میکنه به اجسام به افلاک باشه دیگه اون نه تا فلک نهم که بهش میگن فلک اطلاست این فلک ایست که ستاره اصلا روش نیست و محرک اولیه همه افلاک دیگه اونه و در استراح اهل شهر اینو تطبیه می کنن با عرش بعد زیر این فلک نهم فلک هشتم فلک هشتم فلک ستاره های ثابتی فلک همه این ستاره های آسمون توی این فلک هشتم فلک ثوابت که اینو در اسطلاح شعر فترشون هم بود کرس بعد فلک هفتمه که فلک زوهله بعد شیچومه که مال مشتری هم تو فلک هفت سیاره است به قول قدما تا میرسه آخرین فلک فلک اول فلک قمره که ما رو میگردونه بعد از او خورای خاک با، که معتخب مرکز عالم اون وقت میگه هر کدوم از این افلاک یه ای عقل دارن یه نفس دارن یعنی فلک نهام عقل اول و نفس اول محرکه بعد میاد فلک هشتم عقل دوبام و نفس دوبام محرک فلک هشتم است عقل سبام و نفس سبام ماره فلک هفتان میاد تا عقل مرتبه نهم هم که بگه های پایین میاد های چیزتر میشه که به ماده نزدیتر میشه عقل فلک قمره بعد عقل دهم، ده اون آخرین و کوچکترین و ناچیزترین جزی از عقل که وجود داره تقسیم میشه به اغول جزگیدیه یعنی از هر کدوم یه پتری به افراد شر و کسانی که عقل دارن اینه میگن عقل کل ج... شمیدید که عقل کل و اغول جوزیگه اغول جوزیگه عقلای است که به این اشخاص است. در حال چون حدیثی بوده است که اولین چیزی که خدا آفرید عقل بود و امر حرکت عالم و فعالیت در عالم اول بار به عقل صادر میشه و از عقل منتقل میشه به دیگران این هست که حافظم میگه چی؟ میگه آقلان نقطه پرگار وجود هست اما پرگار دو تا نقطه داره یکی <تص> شون <تص> وسط بایستاده ثابته یکی دیگه میگرده میگه آقلان نقطه پرگار وجود ولی تنها عقل نیست اتا عشق هم عشق که در این دایره سرگردانه اون یکی پای سرگردانه عاقلان نقطه پرگاره بودند، ولی عشق دانت که در این دایره سرگردانه بارها و بارها و بارها حافظ یکی از موارد که اصطلاحات ریاضی ازش استفاده مم. شعری و هنری و ادبی کرده همین کلمه پرگار بارها آسوده بر کنار تو پرگار می شدم مرادشون لنگه است که کنار می چهته. آسوده بر کنار تو پرگار می شدم دولان چون نقطه آقابتم در میان گیره که این که کنار می یه دایره زد، من اون بسه پرستم. آسوده بر کنار چه پرگار می‌شدنم، دوران چون نقطه آقابتم در گره. نظاهر این خیلی تو دیوان حافظ هست، یک جام، یک پرگار آمده در شعر حافظ به وعنی مکروهیله که اون ربطی به این کلمه پرگار مهندسی نداره. میگه گر مساعد شودم دایره چرخ کبود هم به دستا برمش باز به پرگار بگه چون صحبت دایره هست، و چرخ هست پرگار میره ولی پرگار اینجا به تدبیر و چاره اندیسی و مک شوید هست گر مساعد شودم دایره چرخ کبود هم به دست دا برامش باز به پرگار آقلان نقطه پرگار وجود هم ولی عشق که در این داوره سرگرده بعد میگه میگه ما فیدی به عهد داری نداریم عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا همه این عقل و اینا سر جاش اما اولین کسی که حرفش رو گوش کرد حضرت آدم جده علای ما جناب میزوالده ما جناب حوا بود دیگه یعنی <تصفيق> حرف حوا رفت بالاتر همه اون حرف بود گفته بود خداوند این گندم رو نخور این کار نکن اگر همچه بشه همچین چه فلان بله خانم خانوم که رسول فرمیدن قضیه خبر شد <تصفيق> اینه که میگه که اهدما، ما، اهده ما این دهنان بست خدای و اینه اگر نظر فلسفی و ارفانی هم بخواهید حقیقتش است هست که آدمیزاد تا جنبه داره دیگه یه جنبه عقلانی داره، یعنی یه حالت خیرت داره از یه جهت حاکم بر وجودشه یکی هم احساسات و عواطفش داره که جنبه عاطفی قضیه، اون از عشق روی وجود میاده و همیشه کارهای گنده رو عقل نکرد کارهای گنده رو عشق کردیم میگه میروم تا انام شهر گیرم کنم از دست خوب رویان داد عقل رویت مرو که نتمانیم عشق رویت چه باز چرا دیگه؟ چرا خداوند میگه خداوند میگه ما رو اهده ما رو با لبشه یعنی جنبی عشق و قوی تر گذشت و این درست برای که هیچ کدوم از موجودات به استثناء آدم این مسئله است که بارها میگه پرشته عشق نداند که چیست قصه مخوان به خواه جام و گلاوی و خواه که آدم نیست تو اون یکی در ازال فرتو و حسنت تجلید هم زده اشخ میگه جلوه ای که رو خشتید ملک عشق نداشت این آتش شد از این غیرت رو بر آدم این علت اینکه که خلعت خلافت رو تن آدم کردن و خدا میگه که من میخوام یه خلی جانشینی از خودم روی زمین قرار بدم و آدم زاد رو خلق میکنه به جنبه عشق بسید، نه به دلیل جنبه ای عربی ما یعنی بنی نوع انسان رو با لب شیرین دهنان و از خدای. یعنی آدمیزاد و خداوند درش عشق به ولیه بزرگ اهدما ما با لب شیرین دهنان و از خدای. ما همه بنده و این هم خداوندان. بنده اصلش از کلانه این بند، یعنی همون زنجیر و بند رو خیلید. این هشت چیه؟ این این بنده، بنده یعنی کسی با بنده و بنده یعنی در بند آدم دیگه در قلامی که میخوایدن این در جونش در اختیار اون آدم این چه بنده بنده یعنی کسی با بند سرف آده این ای نسبت عهد ما والا به شیگه دهنان خدای ما همه بنده و این قوم خداوندان خداوند به معنی صاحب و مالکی اه... یه شاعری هست به نام عبدالملک برهانی این اه... پدر امیر مویزی شاعر معروف قابل توجه خانم مویزی پدر امیر مویزیه و با... نیگن گفتن که سلطان سنجر یه وقت اشتباهی تیری اندار و این تیر خورد به عبدالملک برهانی مجروح شد و با... ساخت که منت خدای را که به تیر خدایگان منبنده بیگونه نشدم پشت رایگان از هم بلی بعدش پا همون تیر مرد اتفاق هم اینه که وقتی که میره میگه من رفتم و فرزند من آمد خلاف او را به خدا و به خداوند سفردم خدا و خداوند خداوند یعنی پادشاه، مالک و فرموندبا اهده بالا بشید دهنان بست خدای همه خدا ما همه بنده و این قوم خداونده همه مفلسان ما هوای می و مطرب داریم فلس جمعش پولوس یعنی پول خور عرب. فارسیش هست پشیز و اینا چون سکه های ریزی بوده اون پولک های رو تن ماهی رو میگن فلس و فلس پولکه رو تن ماهی فارسیش هست پشیزه یعنی چیزی مثل پول پول گرد فچو بوده پشیزه یعنی فلس ماهی مفلس یعنی آدمی که سر و کارش با فلس، با پنی سر و این شخص با اسکناس و با دولار و ست دولار اینا کار نداره، با پول خورد سر و کار داره این رو مفلس. و در اسطلاح حقوقی، مفلس است که, که سرچی میدونه از علمان، مفلسگیه. مفلس آدم است که داراییش که فرداخت بدهی‌هاش رو نکنه، این آدم ایش میگه مفلس چنین آدمی رو میان از تصرف در انوالش ممنوع میکنه. میگه نه تو, تو انوال مردم گرفتی یه مقداری و نفله کردی زهر کردی، هر کردی، نتونه سیر کنی. حالا باعث شده که مثلاً یه میلیون توان بدهی دارید، دیگه ساکت تومن پور دارید. یعنی هر یه تومن طلبگارات دو قرون بهشون میرسید. حالا اگر که اگر بذاریم، اگر بذاریم تو اینم طلب میکنید. بنابراین فعلا اینه کنار تو تقسیم کنیم برین طلبگارات. این, این آدم میشه مخلص. که برشکستهش میگنید. الان قانون برشکسته. خب آدم مفلس طبیبیست که پولی نداره یعنی مخارج لعاقل مخارج باراتر از نون و آب نمیتونه بکنه ولی میگه که ما در این مفلسی هوای میل و هوا یعنی میل و آرزی لغت عربی است هوا اصلا در عربی میخوام بگم عاشق شدم من میگن هوای تو هوای تو یعنی عاشق شدم هوای یعنی, یعنی هوایی تو یعنی من عاشق شدم اون تو زمیر اول شخص هوای میومطرب داریم یعنی میلشی مفلسانیم و هوای میومطرب داریم خب از کجا تاییه کنیم نیماته با؟ آه اگر فرقه پشمین به گروه نستانیم فرقه امونو بریم گروه بذاریم و صرف نیماته کنیم من دوست داشتم خوداش میامازه مرده آدم خیلی بامزه خوشگذارونی بود و پشکی؟ در اون روزگار جوانی ما، اون آقا با خانومی هم دوست و من هم خانم میشناختم هم آقا رو خانم به من گفت که پلانی پستو امثال که این لباس نوشون میگه نا چون گونده همون خیلی قبی بود و بلند دومت قدرش میگه نا زنک هم زن لاغر موازد موازد کرد کچکندان بود، دفتش که این کچربان خوصو رو بکرد بیگه من, من بدن این رست برام برای من بسید من این گذشت رو شب ما با خوصوحان بودیم لباس قدیمی تنشد صبح اومد اداره تو مجلس کار میکردم، من اداره تون نویسیزی هم همونجود برد کارم اومد اداره لباس نوکنزم گفتم که خستم اون لباس لباس من بگید. گفتم کار دارم دارم،, کار دارم. گفت بگو گفتم والا گفتی که منی که بگیرمون درست چه من گفتا مرد که دیشت تو تنه بودی لباس چودترش گفت دیشت تنه چی شد؟ بگی چی خوردمش چی رو خوردی؟ گفت رفتم لباس گرفتم اون لباس رو به معرض فروش کدش کن گفت سی فروختم خونزه رفتم عرق خوردم دم دادم یه زنگ رو بلند کردم برداشتن بودم می آمدن به هاشت دادم سازدن یکم صبح سوار سواشتن برداشتن این ها رو یادشنام و دو و چهار و یک میشه شستیم این درست همی قصه خیال که این قصه تا روزگاه ما واقعا همجور ادامه داره مفلسان و هوای می داریم آه اگر خرقه پشمین به گروم نستان البته در زم این تیر جانسوز تحنه رو به سوفیه و زاهد نماه هم میزنه که این خرقه ای که نشان زهد و تقواه و نمونه آدم خوبی بودن بنده و ناس اینو میبرن گروم زرن این قصه گروه گذاشتن هم مهمترین گروه گذاشتن این بود یه کسی یه شاعری بود اینه میگم برای اینکه یادتون باشه چون چی میشه شاعری بود به نام سلم عرب معروف به سلم خاسر یعنی سلم زیانکار خاسر با سی یعنی سلم زیانکار این زیانکارش از این جهت بود که گفتن که یه قرآن داشت یک مصحف داشت شب دارش میخواسته عرب بخور این محصف رفت گروه گذاشت در ملکده پول عرب اینی که معروب شد به سلم فاصل یعنی سالم زیان کار. و این خرق گروه گذاشتن و دفتر گروه گذاشتن حافظ میگه که در همه دیر مقام نیست چون شیدهایی خرق جایی گروه باده و دفتر جایی همه اینا نشون مبارزه با ریاتاییه یعنی ما ها مردمی هستیم که ظاهرمونی که غلطنمون می کنیم که ببینیم ما امام زنلاوی دینیم ولی موقعی که لازم باشیم ولی این رو یه رو می زیریم عرض می خودیم. آسان مرزتش که هم سر می خواسته دید، امان اون ملاقا بسیار، این سحنه ها بسیار زیادی یک چمین شیخ سحنه ها گرفتار عشق شد اون اول گرفتار عشق اون پریدون شد و اسیر می و چیز عشت اولش نبود اولش دل در عشق رو باها داشت با اون گفت بیا خوبکرونی بکنن، امون چه بکنن، اون واضح ولی بلدی به هر حال اونم اونم تمام حیثیت آبروش رو در گروی اشق اون دختر ترساب بود